السلام علیک سفیلا و نسل سفیه سفی از صاف خالص و گزیده خالص دقت فرمایی نمی دستم چون توضیح بدم فقط می خواهید تکرون بگم بله، ببینید یک زمان شما الان یک فرمایید که کالایی در اختیارتون می خالص رو از ناخالص جدا کنید فرمایید مروباریده بریلیانید نمی نمیدونم بلد نیستان می‌خواد اون خوباش رو جدا کنید بعداش رو برید دور <تصفح> بگم که نخالصی نداره اون رو جدا کنم بده من میگه سلام بر تویی که صفیه الهی هستی که سر صفیه الهی هم هستی یعنی خدا در میان بندگان که برترین مخلوق شه اونایی که هیچ ناخالصی ندارن جدا کرده تو از اونایی هیچ ناخالصی ندارید